قصه های هزار یک شب شبه بیست و هشتوم. من به دلال گفتم که گردن بعد به ستان و هزار دارم بده دلال چون سخن من بشنید، دانست که گردنبند قضیتی دارد دشوار. در حال گردنبند را پیش والی برد و با او گفت این گردنبند از من دزدیده بودند، اکنون او را دست بازرگانزاده یافتم. من در دکه دلال نشسته بودم و خبر از جایی نداشتم. ناگاه خادمان والی بر من گرد آمده، مرا گرفتند و پیش والی بردند والی حکایت گردنبند بند را از من پرسید من آنچه با دلال گفته بودم با والی نیز گفتم والی بخندید و گفت راست نگفتی آنگاه جامعه من برکندند و تن مرا با ضرب تازیانه مجروح ساختند من با خود گفتم اگر به دزدی اعتراف کنم بهتر است از آنکه گویم خداوند این را در بستر من کشته اند. ناچار به دزدی اعتراف کردم. در حال دست مرا بریده به روغن گداختش فرو بردند که خونش بازی استد. من بیهوش شدم. شربتی به من نوشانده به هوش آوردند من دست بریده خود برداشته به خانه آمدم خداوند خانه به نزد من آمده گفت اکنون که تو را به دزدی گرفتند و دست تو را بریده اند خانه دیگر پیدا کن و از این خانه بیرون شو من سه روز مهلت خواستم و پیوسته به حال خیش گریان بودم روز سی‌ام خادمان وزیر دمشق بیامدند و مرا گرفته در زنجیر کردند و گفتند سه سال پیش از این دختر وزیر با همان گردن‌بند ناپدید شده من از بیم بلرزیدم و با خود گفتم که به یقین مرا خواهند کشت و من نیز ناگزیر که حکایت خیش با وزیر بازگویم چون مرا پیش وزیر بردند دلال همانجا بود وزیر گفت همین است آنکه گردن بند می فروخت و شما به ستمگری دست او را بریده اید دلال گفت آری همین است آنگاه وزیر دلال را به زندان فرستاد و گفت ای دلال ستمکار دیت دست این مظلوم به دست توست آنگاه وزیر فرمود که با زبان مرا بگشوده زنجیر از من برداشتند و خادمان نیز برفتند کس جز من و وزیر در خانه نماند با من گفت ای فرزند حدیث به راستی بازگو که تو این گردنبند چگونه به دست آوردی من ماجرای خیش که آن دختر بزرگ چگونه آمد و این یکی را به چه چسان بیاورد، همه را باز گفتم. چون حکایت بشنید، سر به زیر رفکند و دستارچه به دست گرفت و بگریست. پس از ساعتی گفت، ای فرزند، آن دختر بزرگ دختر من بود. به کابین پسر امش در آورده به مصر فرستادم. چون شوهرش به مرد بدینجا بازگشت ولی از زنان مصر قهبگی آموخته بود دو سه بار پیش تو آمد پس از آن دختر کوچک مرا نیز فریب داده با خود آورده بود چون دختر کوچک ناپدید شد یک چندی بیخبر بودیم پس از چند گاه دختر بزرگ راز به مادر آشکار کرد و مادرش نیز با من باز گفت ما پیوسته گریان بودیم و خواهیم گریست ای فرزند سخن تو راست است پیش از آن که تو بگویی من از واقعه آگاه بودم و اکنون همی خواهم که دختر خورد سالتر از او را که از مادر دیگر است به کابین تو بیاورم و مهر از تو نستانم و تو در پیش من به جای فرزند باشی من گفتم فرمان تو راست در حال کسب موسل فرستاده مالی که از پدرم به میراث مانده بود بیاوردند و دختر به من کابین کرد و خواسته بیشمر به من داد و من اکنون بسی نیکبختم و به رفاهیت همی گذارم به یهودی گفت ای پادشاه زمان من از حکایت او شگفت ماندم. چندی دیگر به نزد آن جوان بودم او مال بسیار و هدیتها به من باز داد من از آنجا مسافرت کردم و بدین شهر آمدم روزگاری خوش داشتم تا دوش با اهدب به دانسان گذشت که گفتم ملک چین گفت این عجیبتر از حکایت اهدب نیست ناچار شما را باید کشت خاص خیاط را که او سر همه گناهان است و به خیاط گفت اگر عجبتر از حدیث اهدب حدیث گفتی از همه شماها درگذرم، وگرنه همه شما را بکشم در حال خیاط زمین ببوسید گفت ای ملک، آنچه به من گذشته عجبتر از حدیث یاران است و آن این است که قصه عاشق و دلاک من پیش از آن که اهدب را ببینم به خانه یکی از خیاطها مهمان بودم و از خداوندان صنایع همه کس در آنجا بودند هنگام برآمدن آفتاب خان گسترده خوردنی حاضر آوردند هنوز دست به تعام نبرده بودیم که میزبان جوانی ماه روی و نیکو شمایل را که جامعی بس فاخر در برداشت به مجلس آورد و آن جوان را هر عضوی از عضو دیگر خوبتر بود مگر اینکه پایش لنگ میزد پس بر ما سلام داد و ما رد سلام کرده بر پای خواستیم چون جوان خواست بنشیند مرد دلاکی را که در میان آن جماعت بود بدید ننشست و خواست باز گردد ما نگذاشتیم و میزبان به نشستن سوگندش داد و سبب بازگشتنش بپرسید جوان گفت راه بر من مگیرید و مرا نیازارید سبب بازگشتن من این مرد دلاک است چون میزبان این بشنید عجب آمدش که این جوان از اهل بقداد است چگونه در این شهر از دلاکی پریشان خاطر گردیده آنگاه حاضران روی به آن جوان آورده حکایت باز پرسیدند و از سبب نفرت او از دلاک حیران شدند. گفت ای جماعت مرا با او در بغداد حکایتی قریب روی داده و سبب لنگی پای من هموست و من سوگند یاد کردم که در هر جا که او بنشیند ننشینم و در هر شهری که او باشد نباشم. چون او به در بود من از آنجا به در شدم و در این شهر جا گرفتم. اکنون که بدانستم او در این شهر است من امشب از این شهر خواهم رفت. ما چون این حدیث بشنیدیم او را سوگند دادیم که حکایت بازگوید. دیدیم که گونه دلاک زرد شد. جبان گفت ای جماعت. بدانید که پدر من از بازرگانان بزرگ بقداد بود و به جز من فرزندی نداشت. چون من به سن رشد رسیدم، پدرم درگذشت و مال و رم و غلامان و کنیزکان به میراث گذاشت. من هر روز یک گونه جامعه قیمتی پوشیده خوردنی های لذیذ میخوردم و به هر گونه عیش و طرب مایل بودم. ولی زنان را دوست نمیداشتم. تا اینکه روزی در بقداد از محلتی میگذاشتم. گروهی از مستان راه بر من بگرفتند. به کوچه بمبستی گریختم. در آخر کوچه به خانهی پناه بردم و در گوشهی خزیدم. ساعتی ننشسته بودم که از منظره قرفه ای از قرفه های خانه دختر آهوچشم زهر جبینی که در همه عمر چنان لعبتی ندیده بودم سر به در آورد به چپ و راست نگاهی کرد باز پس نشست و منظره را فرو بست ولی آتش عشقش در من گرفت و خاطرم به محبت او مشغول شد و از ناخوش داشتن زنان بازگشتم و دل به مهرشان ببستم در همان مکان تا هنگام شام بنشستم قاضی شهر را دیدم که سوار است و غلامان و خادمان از پس و پیش او همی آیند. چون به خانه رسیدند از اسب فرود آمده به سوی همان قرفه که دخترک در آنجا بود برفت. من دانستم که آن پریپیکر دختر قاضی است، آنگاه برخواست قمین و ملول به خانه خیش بازگشتم و به بستر افتادم کنیزکان بر من گرد آمدند و سبب ملالت من نمیدانستند. من نیز راز به ایشان آشکار نکردم و هرچه پرسیدند پاسخ نگفتم همه روزه بیماری من سختتر می و مردم به ایادت همی آمدند روزی پیرزنی به عیادت آمد دلش بر من بسوخت و بر بالین من بنشست و مهربانی کرد و با من گفت ای فرزند ماجرای خیش بیان کن من ماجرا به دو گفتم گفت ای فرزند اینکه تو دیدهی ای دختر قاضی بقداد است و آن خانه قرفند در قرفه از آن دختر است آزی خانهای جداگانه در پهلوی آن خانه دارد من بسی روزها پیش دختر آمد و شد میکنم تو وسال او را جز من از دیگری مخواه من از شنیدن این سخن فرهناک شدم و ناتوانیم به توانایی بدل گشت و خانگیان خرسند شدند عجوز برفت دگر روز بامداد با برخواستم چندان سستی بر جا نمانده بود و به بهبودی و تندرستی بسی نزدیک بودم چون عجوز بیامد گونهش دگر گونه بود گفت ای فرزند از آنچه در میان من و دختر گذشته مپرس زیرا که چون من قصد به دو آشکار کردم برا شفت و گفت ای پلیدک این سخنان چیست؟ چون او را خشمگین یافتم بازگشتم، ناچار بار دیگر به سوی او باید رفت. چون من از عجوز این خبر بشنیدم، بیماریم اوت کرد و چند روز به حالت مرگ چشم به راه پیرزال بودم تا اینکه که عجوز بیامد و گفت ای فرزند مژدگانیده گفتم هر چه خواهی مزایقه نکنم گزارش بازگو گفت دیروز نزد دختر رفتم چون مرا شکست خاطر و گریان دید گفت ای مادر چون است که را دلتنگ همی بینم چون این به گفت بگریستم و گفتم ای خاتون من چند روز قبل پیغام جوانی با تو گفتم که او تو را دوست می‌دارد و از عشق تو به مرگ نزدیک شده تو برا شفتی و بر من خشم گرفتی اکنون من از بحر آن جوان گریانم که او زنده نخواهد ماند دخترک چون این بشنید مهرش به جنبید و بر حال تو رحمت آورد پرسید که این جوان کیست؟ گفتم او پسر من است تو را چندگاه پیش از این از منظری قرفه دیده آشق تو گشته و تیر محبت تو خورده بیمار بود چون من نزد تو آمدم و خشم تو با او باز گفتم بیماریش سخت گردید ناچار خواهد مرد دختر چون این بشنید رنگش پرید و گفت از برای من به چنین روز افتاده گفتم آری گفت نزد آن جوان رو از من سلام رسانیده بگو که چون روز آدینه شود ساعتی پیش از نماز جمعه بدین خانه بیا من میگویم که در بر وی بگشایند و او را به خانه آورند تا زمانی با وی بنشینم چون این مجده از عجوز بشنیدم اندوه و بیماریم چنان رخت بست که گفتی هرگز در تن من بیماری نبوده است. آنگاه جامهای خود را به پیرزن به مجدگانی دادم و خانگیان و یاران به سلامت من شادان گشتند و من به عیش و نوش گراییده خرسند همی بودم تا روز آدینه برآمد. عجوز پدید شد از بیماریم باز پرسید. من شکر عافیت گذاردم برخاسته های فاخر پوشیدم و منتظر وقت بودم عجوز گفت برخیز و به گرمابه اندر شو سر به تراش و کسالت بیماری از خیشتن دور کن گفتم نکو گفتی ولی نخست سر به تراشم و آنگاه به گرما بروم پس خادم را گفتم که دلاکی خردمند و کمسخن که از پرگویی مرا نیازارد بیاورد خادم برفت و همین دلاک را بیاورد سلام کرد جواب گفتم گفت خدای یگانه و بی همتا و دانا غم و هم و اندوه و حزن تو را از تو دور گرداند گفتم خدا دعوتت را اجابت فرماید پس از آن گفت منت خدای را که تو را از بیماری خلاص داد و اکنون چه قصد داری سر خواهی تراشید یا رک خواهی زد که از ابن عباس رسیده که هر کس موهای خود را در روز جمعه کوتاه کند خدا هفتاد بلا را از او دور کند و نیز از او روایت است که هر کس در روز جمعه هجامت کند چشمانش کم سو نشود گفتم سخنان بیهوده بگذار همین ساعت برخیز و سر من بتراش. برخواست دستارچه در هم پیچیده از پیشبند به در و دستارچه بگشود استرلاب از آن بیرون آورد و هفت لوه استرلاب را در دست گرفت و به ساحت خانه رفت و رو به آفتاب بیستاد از دیرگاهی بدون نگاه کرد و گفت ای آقای من بدان که امروز روز آدینه دهم ماه سفر سال چهار سد و, و هجرت نبویه است علا هجرها افضل سلبات و تهیه و تاله اش چنانچه از علم شمار دانستان مریخ است که هفت درجه و شش دقیقه گذشته و ای با اتارد دارد و همه اینها سر را را است مبارک و باز چنین می نماید که تو میخواهی که به شخصی بزرگ و نیکبخت برسی و چگونگی آن را با تو باز نگویم گفتم مرا بیا و روان مرا کاستی من از تو جز سر چیزی نخواستم برخیز و سر مرا بتراش و سخن دراز مکن گفت به خدا سوگند که اگر تو حقیقت کار بدانی به سخنان من طالب شوی و هر چه گویم چنان کنی. و مصلحت تو در این است که شکر خدا به یاری و با من مخالفت نکنی که من نصیحت گوی مهربان تو هم. و همی خواهم که یک سال به خدمت تو قیام نمایم و موز از تو نستانم. چون این سخنان شنیدم گفتم امروز تو مرا خواهی کشت چون که سبب اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد از داستان فرو